سيه هشتم الله صل على امروز في و یو اخر یو جعلو خبرم و یو اخرو و ذالک شیعو معلومو یو جعلو محتلعن و یو ان ذالک خلقاله ف یو لمن عرب زیدن به وشخصه و شخصه ولم یهعرف ان اخ زنگدان اک و نه من عرفه نله اخم ولم یهعرف اسم او اخجه بود بعد مفتدا اوور مقدم و به صورت این مبحث مال اونجایه که هر دو یعنی مفتدا و خبر معرفه هم. و صلاحیت اینکه که بشن بشند رو چیه؟ این بارم هر دو معرفه صلاحیت اینکه که بشن بشند رو هم دردم و ما خوندیم که اگر هر دو صلاحیت این که موطدار بشند رو دارن هر کدوم که مقدم باشه ما اونو میگیم چیه؟ موطدار هر کدوم مقدم باشه. مثل الله و اله و و محمد و نبی جناقا اما معرفه بودن با مورد شناخت مخاطب بودن دو تا چیزه ممکنه یه چیزی معرفه باشه اما مورد شناخت شما باقی یعنی شما نشونیدش و شما همه معارف رو می‌شناسید الان مثلا فرض کنید ما بگیم مثلا ذریکه یا زول که با اون که یکی از نبی هاییه که اسمش در قرآن هست ممکن شما به مکنه نخواهید یا زول و برنی معرفه هست اما شما اونجا ندونید که این لغب اسکنده پس بین معرفه بودن و شناخت شما چیه؟ برد ممکنه این موقع شما یک معرفه نشون میگه المجبور و ثبوت اونی که مجبور از ثبوتش ثبوتش معلوم نیست مجبور از ثبوتش المجبور و ثبوتمرشی این این که این ثابت است برای چیزی اون چیز برای شما مشخص نیست مجبوره ثبوت رو بشید ببینید مجبور بودنش هم mišه کیه؟ این کی در سامه مجبور از ثابت بودنش برای شید این از مخاطب. شید معینی رو برای او در نظر ندارد مخاطب. مثل اینکه زد رو شما حملش میکنید در پسر مکشفر و شخص خاصی رو شید خاصی رو برای او ثابت دارید در دا چیزی نیست مجبور از ثابتش برای شید این از بساند ببینید حالا مجبور بودن شما چجوری میپهمید نه ازش دعال میکنیم تو زید رو میشناسی یا نه؟ میگه نه میگه خود خب چون نمیشناسی میکنیم اش نیست که دی اعتقاد این در اعتقاد و نظر متکنده اینه که این رو این نمیشنی مثلا در نظر او اینه که زید رو میشناسه میگه زید رو میشناسه زید کیه؟ میگه اون آغاز زید اما اخوکر یعنی برادر تو نمیدونه که پدرش زن دیگری داشته و این هم برادر روز اینو نمیدونست اخوکه رو نمیدونست با اون که معرفت و ساق اضافه شده به کام در رتبه ایدم اونو نمیدونست ما میاییم اخوچه رو که مجبول است ثبوتش برای شیدی یعنی زید نزد مصامه تو اعتقاد ما که پنهان کاری بوده و او نمیدونسته ارجوخه رو میکنیم خبر و زید رو میکنیم مبتدا و ارجوخه رو برای زید کار میکنیم مشه که چون میدون زیدون اخو چون زید نمیشناسه اما اخ بودن زید رو برای خودش نمیدونسته این رو مجبور بوده میکنیمش خبر. میگه ال مجبور و ثبوت و لشه اننداسامه فی اعتقاد المتکلمون هم در اعتقاد متکلمون ولی سوالی که که بی اعتقاد متکنده این المجهول یج علو خبره اونی که مجهول است قرار داده میشه چی یج علو خبر و یا میکنیمش خبر و بعدش هم مؤخر میاریم تا این خبر بودنش حسابی چی بشه مشخص بشه یج علو خبرن و یا اخر و ذلک شیء و ذلک شیء اندسامه و اون شیلی که معلوم از پیش سامه مشخص یه چیزی یعنی هست که از من میشناسد تشکیزه و اون شیلی که معلوم از پیش سامه در اعتقاد تو کلم یاجعن و هم قرار داده میشه چی؟ انجامش میدید مقدده یاجعن و مقدده هم و باقدم. و یو انزال کفل غالب و از غالب اوقاتی که ما میشناسیم از این قانون بگیریم عدول نمیش لا ممکن یک مورد دو مورد پیدا بشه که به قول معروف ما ببینیم عدول شده ولی غالبا از این عدول بشه مشخص پس 99% درصد اینطوریه که شیء معلوم رو میکنیم چی مبتدا و شیعه مجبور رو میکنیم چی؟ خبر و مقتدر هم مقدم میکنیم خبر رو هم ماختر میکنیم باز شد <تصفح> در میشناسه اسمش رو به هم شخصش رو یعنی کیه این زید مال که این اسم مال که شرق مشخصات خارجیش رو هم <تصفح> و شرقه اما ولن یه عرف ببین این طرف ها نمیدین ولن یه عرف انهو اخو اما نمیدارد که این زیدی که بیرون میشناسه دو خیابون هر گز بایش تلاف ارک میکنه این برادرش هم برادر موننش رو چیه؟ ولن یه عرف انهو یعنی انه این زید اخو یوغالو این ناید بایده یوغالوی ده زیدون اخو این زیدون اخو ای ناید بایده یوغالوست به یک چنین شخصی ما میگیم زیدان اخوکه زیدونی که میشنسه رو میکنیم مبتدا و اخوکه رو که نمیدانت میکنیمش چی؟ بگیو زیدان حالا اگه عکسش باشه میداند که پدرش زن دیگری داشته و میدونه که او دارای برادری دیگر هم هست اما نمیدونه که اون برادرش کیه؟ زیدان. اینو نمیدونه میدونه برادری داره اما زید بودن رو برای اون برادر بگیر نمیدونه والله من عرب این به من حتی جون به من و گفته میشود به کسی که عرب او اخا گفته میشود به کسی که میداند برای او برادری است اما ولم یه اسم ما اما اسمش رو بگیر نمیدونه نمی اسمش بگیر. اسمش رو نمیدونه درست شد؟ میگیم اخوگه زهیده مثل این که کسی میداند من بسری دارم ابنی را میداند آه. اما اسمش رو نمیدونه میگم ابنی احمد اسمش رو آه. مثل همه مواردی خودمون سد تا شده اخوگه زهیده ول مبتده پس مقتدا خوباً مقدم ها به صورتی در این دو مثالی که دیدی در این دو صورتی که دیدی مقتدا کدومه همونی که مقدمه در اخوکه زیدون مقتدا اخوکه در زیدون اخوکه مبتدا زیده پس اگر ما دیدیم یه جایی گفتش الله و الهونا در اینجا چیه اون مقاطب چیه میدونسته الله رو میشناخته اما نمیدونسته که این الله خدای ما هم هست ما بهش هم معتقدیم ها بهش گفتیم اللهو الاله ماحمد النبی جونارو به کی بگیم به کسی که پیامبر اسلام رو مشنسته میدونه پیامبر اسلام هست اما نمیدونه که این پیامبر اسلام پیامبر ما هم هست پس خبر بدیم که پیامبر ما هم هست محمدان محمدون جونار درستو پس این مطلبی بود که گفتم تمام شد هر کدوم معلوم است میخواد محكوم بر عليه میشه مبتدا هر کدوم مشغول است میشه چی؟ فاطه هات كله على المبتدا والخبر قام حالا میگیم که نواصخ مبتدا و خبر تو مرفوعات اول از مبتدا خبر شروع کردیم حالا وارد نواسق مفتده ها خبر میشه میگه تر کده علم مفتده هست ورد خبر افعال داخل میشه بر مبتدا مفتده ها خبر چی؟ افعال میشه مثل افعال نابسته افعال مغاربه افعال غروف چنده سه و حروف. حروف هم داخل میشه غروف مثل حروف مشبرتون به دره حروف مشبه بلیسه. و لایه هم؟ بلیسه و لا یه نفیه؟ اینجور فتج فتاج مفتده اسم این افعال و حروف قرار میدن مبتدا ها اسم برای خودی هست مفتده ها رو عشم خودستی می میکنه خبر و خبر ها و خبر رو برای خودشون چی قرار میدن؟ خبر براو برای می دن برا خودشون. چون حکم مقتدا خبر رو نسخ میکنند به اینا میگن چی؟ نواسخ چون حکم مقتدا خبر رو دیگه نسخ میکنن یعنی دیگه ما مبتدایی نداریم خبری نداریم اینی که داریم مبتدا نیست اسم کانند اینی که داریم خبر نیست خبر مبتدا نیست بلکه خبر نسخ میکنند و تسام ما ان نوازخ و این عفعال و غروف نامیده میشوند اندواسته نامیده میشوند یه مفئوله اول بوده شده نایبواهد داخلی توسن بوده اندواسته مفیر بودی کنی شود نامیده میشوند این افعال و غروف به نواسته و یه خمس تا انواعه و این نواسته چند قسمه نوع، چند نو هست؟ شش تا شد ما دا شما دارد انته بودیم شیشتا بوده هست؟ ظاهرش اینه که مرمون شیفت و افعال غروب رو اینجا ذکنه میکنه افعال غروب رو ذکنه میکنه آخر کتاب ذکنه کنه در صورت که افعال غروب جزه نواسقه اینجا تو باب خودش از میکنه آخر کتاب میکنه بزنه میگه پنج مورد تو هست رو میگه چند اول, اول. اله اول و اله افعال رو ناقص هست افعال رو ناقص هست گفتیم که اطلت نقصشون هم چیست؟ در کتاب اجازی درست که چون نقصی دارن نسبت به چی؟ افعال تامه یعنی معنای مستری ندارن فقط دلالت بر لفت می کنن اونم لفت خبر به مفتدار درست شد؟ اینا درشون میگن افعال ناقصی هل افعال ناقصه ول مشهور منها. مشبور منها مشهور از این افعال ناقصه اونی که مشهوره، چون داره مشهور هم داره میگه ول مشبور منها کانه کانه را همشه اول سکر میکنن رئیس این وروبه تی افعال ناقصه هم کانه و بخاطر خاطر همین خطوزیات نمیداره که اون یکی ها بگیر نداره حالا خطوزیات حتی حتی حفظیتی که فقط مال این آقای بید منها کانه یک که دلالت میکنه به ثبوت خبر برای مقتدا در زمان گذشته دشته اگه کانه باشه خالسته ولی یک کانه باشه ثبوت خبر برای مقتدا در زمان زارت دلالت میکنه بعد تحول ها اصبه ها و از ها و امسا دلالت میکنند و از خبر برای مقتداد از همان صبح و ظهر و زلت طوله شد طوله دلالت در نهب میکنند ما و ما بره و من و ما اون خود فعلشون به معنی و ماشم ما این نفیه نفیه در نفیه اصباق به وقته مادامه مای مستریه زرفیه دوید میزنیم اجلس مادامه زیدان جانسان بشین تا زبان دیگه مادام حکم این ها چیه کار اینها چیه میگه و حکمها و اسمه و نسول خبره حکم اینا اینه که رفت بدن به اسمشون و نصف بدن به خبرز. و یجوز جوز و فعل کل توسط و طول خبر جایز از در همه این افعال واسطه شدن خبر واسطه شدن خبر بین چی و چی بینه خود فعل و اسمش یعنی مثلا بچه ایم که کان کانه زیدون قائمان بگیم کان قائمان زیدون ولن یک کلهو کفوال اجا کوفال خبر مقدم <تصفيق> تقدم <تصفيق> اسم حالا خبر به اسم کانه فاصله کرد نه توسطه خبر و سیم و 3 و 500 در اواخر تقدمه علیه یعنی با یا جزء و بیما ازاس فکرکن فقط دو از توسط خبر و جایز است در جایید از 5 تا آخری غیر از که مادره در غیر از آخری جایز است فقط دو موه ها مقدم شدن خبر علی ها بر خود این قاله غیر از این آخری کو ماست مادرما بابت عمل وبارور هم چرا؟ چون چهار تاش شمای نافیه داره که صدارت داره یکیش هم مای مستریه داره کهش میگن محصول حرفی اونم دارای چیزی نمیتونه برش مقدم خبر نمیتونه مقدم شد. اما در جای نونها و فی ما ادا و لعیسه و زاله انتکونه تاغم نکنه این مقدم جدید دردی بعد اینجا لعیسه را جازه چیدونه جوزه اونهایی دانست که خبرش میتونه بر مقدم بشه در که شما تو کتاب دیگه خوندید که چی؟ هم. که لعیسه خلافه ادهی گفتن میشه ادهی گفتن بیشه وقتی ما عدا فتحه و لعیسه و ظالم این ستا رو بزارید کنال فتحه و لعیسه و ظالم این ستا به بکنال در جنیل این ستا باز این فیما هست به اون بلکن اون انتکونه توسط شد این چه جایز از و فیما ادا فتحه و, و جایز از در غیر عدای غیر دیگه بود. جایز در غیر فتحه و و ساله چی؟ انتکونه تامنه, تامنه باشه خب اگه کانه تامنه باشه به معنی چیه؟ هزره و بقه ساره تا همه بشه به معنی چیه؟ به معنی ساره واسیه ساره الهیه یعنی دفت بسید باشه عصبه و عدها و امسا اگر تا همه بشه به چیه؟ دخول در وقت عصبه حضیبان زهر زید زل زل سایدار شد آه. بات بگیم بات حضیبان این شب رو خواهیم با تبل قومه یعنی شب والد خانه شد مازاله مازاله و مابره و منفکه درست شد مادامه لعیسه که هیچی زاله هم که هیچی بطه هم که هیچی اینا ناوستن. اما غیر از این بره یعنی ترکه یعنی تام نبشه ترکه انفکه یعنی جدا شد تام بشه. دامه یعنی باقی ما دوام برن. دوام دوام نامی پس برمانی دامه, دلو. دامه دلو چیه دامه دامه بیدش زلوهو سایش یعنی دوام, دوام یا سایش با دوام با سایش انفکر یعنی جدا شد انفکر جدا میگیم انفک از این رو نه از این رو یعنی انفصل از این رو نه از ما منفصل خود بوده بره بشه به برنایی تعد کردن لن ابره هازل مکانه یعنی لن ابروچ هازل مکانه از این مکان تکون دیست چی هیچی زالمی چی باطه و زنده بودن؟ با ما تسر رفن اونها یعمل و عمل هم ما تسر رفن اونها یعمل و عمل هم هرچی که تسر رفن یعنی تشد هر چی که مشتق باشه از این افعاد هرچی که مشکل بشه از این افعال بسید یه و عمل خود عمل خود این افعال رو انجام مثلا کانه مزارج چیه؟ یکونه بهده عملش کن همه عمل همین کانه رو هم انجام. ساره هم همینطور اسبه ها و ازها و همسا هم همینطور زله و باطن هم همینطور لعیزه ندارد مشکل نداری چیزی لعیزه یزالام ظالم داریم مزارش یزروه است یعنی زوار یاد نامازه زوار خود شده یعنی زایه شدن اون یزروه اون تامنست یه یعنی ظالم داریم مزارش یزروه یعنی جدا کردن سوا کردن اونم تامنست <تصفح> پس کنم <لذا>، ناقص ناقصه <تصفح> مزارش <تصفح> <یزلوه> و ما تصرف اینها یه عمل رو دو تا مسئله میده یختست و کانه این چیه؟ خصوصیاته کانه چون رئیسه ای دید یختست به جواز حرف به نون مزارعه ها المیزون مم. یا یه میگفتم لمعک و بقیر که حضرت مریم گفت لمعک اکو بقیر یعن. یا انتک و حسنتن دو قرآن داریم میگفت آیا خصوصیات؟ لم اکو و دیگر طبق قانون باید بگه لم اکو یا بگه لم اکون لم اکون بگه باب از اکونو بوده میشه لم اکون و از باب و نون انتخاب ساکنه میکنه باب میفتون چندو مشخص. ولی چرا نون افتاد شد لم اکو دیگه از خصوصیات کانست از خصوصیات کانست اما شرط و یختست سوکانه کانه به جواز حذف نون مزاره پس اولا نون از چی حضر میشه؟ مزاره اولی شرطی میگه باید مزاره باشه دومیش بونیش المجزوم به سکون اون مزاره هم باید مجزوم به سکون باشه مجزوم به سکون یعنی دیگه از یکونا که مجزوم به حسب نونه از اون حضر از یکون اکون نکن، تکون این هایی که مجلوم به چیه؟ سکونه یعنی حصف حرکت از اینها ها حصف میشه اونا شرح بگه بگه بگه مجلوم باشه جزمش هم به سکونه دو دو شرح بگه هم بگه بگه بعدش ساکن نباشد به دنبال میگه و بعدش دمیر هم نیومده بشه الان لمعک و بقیه همه شرایطی داره اولا مزاره اکونو بوده ثانیه مجدون لند داره ثالثم مجدون به سکون بوده که از فرکشه ثالثم بعدش بقیده که با مفتوه و ساکن نیست و آخرین شرطشم اینه که بعد زمین نیست فرکشه مزاره و ولم اکو ولم اکو بقی ین ولم اکو بقی ین که باشه رو گفتیم بوده؟ بوده و بقی یتن نگفته با خاطر اینکه وزن فعول برای مزاکر مهندس چیه؟ بقیان. بقیان بوده با باید دو کلمه جمع شده یا یا دلیه های خاطره بقوی یا رو این سه تا شرط اون گفت، دو تا که نگفته بود اینها به شرط عدم اقتصال به که نصب به شرط اینکه که متصل به زمیر نصب نشود. به شرط اینکه که زمیر منصوب بعدش یک ولا ساکنه و شرط بعدش هم که بعدش ساکنه وجود و بمن سمن و از این جهازویی به تو شردم هست لم یک جوز جایز نیست بی مهده در مانند این مثال لم یکون هو لم یکون هو جایز نیست که شما نون رو هرز کنید چرا؟ چون بعدش نمی کنید مشبه است و لم یکونه لا هو نیق فراله هم الان لمیکن ها این کیس از یک حدیثی بنابرای هم لمیکن ها لمیکن فر زمیر داخلش و اسمش اون ها زمیر متصدی منصور خبرشه فرض کنید زمیر اول بخوره به شخصی که دیده شده زمین دوبامم مثلا زمین اول بخوره به ز زمین دوبامم بخوره به چیم؟ مثلا دجال لب یکون همه معنیش میشه چیم؟ نبوزه دجال زه دجال لب یکون مشخص و لب یکونه لا هول لغ فررقم لب یکون فِلْ اَنْ لَهُ اسْمی شید لَمْگَكُنِلْ لَهُ چون رو همزه وصل می دیگه نمی در درجه کلام؟ می افته دیگه چون می لام الله الْلَهُ با نونه لَمْگَكُنْ چیه؟ هر دو؟ ساکنن، ازت دقا ساکنن این هرده که هرده که؟ هرده که هست کس رو می دیم دیگه لَمْگَكُنِلْ لَهُ دیگه اینجا نون رو هست اینجا در واقع با حرکه یافتن قوی میشه نون به حصل نمیشه اونجا هم زمیر زمیر یکی از خصوصیاتش اینه که همه چی رو برمیگردونه به حصل خودش خب پس بنابراین نمیذاره حصل بشه میگن از زمیر یه رو دلشی های را زمیر هر چیز رو برمیگردونه به حصل خودش خب اینجا هم لن یکن هم اون هم باید برگردونه یکن رو به حصل خودش نمیذاره نمیذ عظمت این ده نام نامی الله اسم لم نگون ل یغ این لام لام حرف جاب یغ فره بعد از لام منظور نه نه مقدر چون حرف جاب وسط بیرو مجاری در نمیاد بعد دستوره رسم می بنده لن یغ فر این یغ فر زمین ضمیر با اول بش به الله نه اونجا رو منظور متعلق به یغ فر لیاقت فرند این لیاقت فرند چی میشه لقفرانی هی دارن بعدیم میره یه چی لقفرانی هی دارن این لقفرانی هی جارو مجبور متعلق به آمین و مقتدر خبره یا کنم خشونت الله اسم یکون کنم لام با معرف جار بعدش اندر ترتیب چون فایل مزارم هست یا تو فیروش شدیم بعد این جارو مجرور دعویل به مستر میده میشه لغفرانهی لحون این لغفرانهی جارو مجرور متعامل و آمهل مقدره یعنی ثابتا موجودا و خبره لکنه لامی که ببینید لامی که بر سر خبره کانه میاد اون هم کانه مندید نامی که بر سر خبر کانه منفی در میاد و اون کانه هم خبرش پیده مزاره مثل میشه خبرش پیده مزاره لام بر سرش اومده خود کانه هم چیه؟ منفیه به این لام میگن لام جهود لام جهود یعنی لام این کار با هی جنی ها لامه چی میگن؟ دور. و معناش تأکیده یعنی هرگز خدا نمی بخشه, بخشه. ولی اگه این لامم نیاد میشه لام یکون الله یکفه رو نمی باشد خداوند بخشنده اینها این لام که میاد مفیده چی میشه؟, میشه. هرگز خدا اینها رو نباید این یک خصوصی خصوصیت خصوصیت دیگه رو میگاه و کذا جفی نحه و همچنین در مانند این مثال این هم باز میگن از وا. ان ناس و مجززیون و اعمال مجدید چیه؟ اسم مقولول می جذا جدی رمایرمی اسم می اسم چی؟ میشه م یعنی جزا جذادهی شده. مجدون جمع میشه. ان ن و مجدیون مردم، جزا شده هستند به اعماله به چی به اعماله مردم جزا واداششون می دیدن به اعماله به اعمال و تقویم معلوم جزای بود. ان خیرا خیران، ان شررا ان اون خیرا خیران، ان شررا فشرور یعنی چی یعنی اگر عملشون خیر است عذابشون هم خیره, خیره. اگر عملشون شر جزاشون هم؟ در واقع این جزاله یعنی خود کانه حذف شده اسمش هم در اینجا چیه خیره. کانه و اسمش یا کانه و خبرش در مثل این مورد چیه خیره. خیره. کانه و اسمش یا کانه و خبرش در مثل این موره هست باشه حالا نگاه کنید من تقدیر این شرفی شرفه بول بگم اناس و مجزیدونه خبرش به اعماله متعلق محسیدونه. این این شرطیه خیرن خبر کانه است امکانه و اسمش بعد از انشرتی یه چی شده؟ نه. بوده امکانه امال و هم خیلن امکانه امال و هم خیلن بعد اون فخیلانم بوده فجزا و, فجزا و هم چی؟ خیلن جزا و مبتدا خیلن چیه؟ خبرشه جمله اسمیه هم بوده هم برای جزای شرک کنند چون جمله اسمیه اگر جزای شرک واقع شد چی بازم داره؟ خالص گفت. خب با همین تقدیر جمله دوگان چجور میشه؟ امکان عمل هم و جزا هم در این صورت اینو بهش بگی شکل اول شکل اول چجور شد؟ در قسمت شرطش چی از شده بود؟ کانه اسمش. در جسمت جزاء چی از شده بود؟ مبتدا. پس در جسمت شرط چی از شده بود؟ کانه اسمش. در قسمت جزاء چی از شده, جزا شده بود؟ ها؟ مبتدا. این درس بهترینوه کُلن اینا. چیکار؟ این درس بهترینی میشه. زیرا زیرا قسم اولا 4 قسم میشه قسم اول کانه و اسمش تو شرط شده مقتدار توی جزا این قسم بهترینه زیرا کانه و اسمش اگر بعد از ام شرطیگه حذف شد کانه و اسمش اگر بعد از ام شرطیگه هست شود، شویوو داره شویوو داره یا سیرش داره و جمله اسمیه اگر جزای شرط واقع شد و جمله اسمیه اگر جزای شرط واقع شد نیاز به فا دارد این چیه؟ و مبتدا هم خون اگر قرینه براش داشته باشیم چیه؟ میشه پس اعمالی که تو این صورت اتفاق افتاده همش چیه؟ قانونیه از یه طرف چی هست شده؟ کانه و اسمش اون بعد از این شرکی هست اشکال نداره از یه طرف فا اومده شده فخیران اون هم نداره چرا چون این طلبه اسمیه شده چه از از یه طرف دیگه مبتلا هست شده به خوبه نداره مبتده قدید باشیم چیه؟ برس اینم این هم مشکلی دوش. پس این صورت اول میگه ببینید اربع و او چن شد داره؟ هم. چهار شد نصب و اوله و رفع و ثانی نسب دادن به اولی ببینیم خیرن و رفت دادن به دومین ببینیم چی پایون نگفتیم یا نه گفتین رو حالا میخوام بدم میگه اول عکل اول یعنی چی بخونیم ان خیرون و خیر ان خیر و خی میید ان خیر و خی صورت چه اینجا چ شده تغییرش چی بوده؟ امکان به عمله خیرون امکان، بی عمله هم خیرون فکان جزاؤون فکان جزاؤون خیرون خیرون این از هر دو جهت زیریه فکان جزاؤون یک اولا کانه و چی از کده تو اون قسمت شن کانه و خبرش بیعماله هم یا بیعماله هم خبره دیده خبر مقدم خیرون اسم تو با کن اولا در قسمت شن کانه و خبرش حرف کده که این بعد از ان شرطیه کم است که این بعد از ان شرطیه چیه کمه چیز خوبی و در قسمت جزا چی شده؟ کانه و اسمش که این هم چیز خوبی؟ نیست و زمین فا هم فا هم بر سر جزای شرط ماضی در آمده فا بر سر جزای شرط ماضی در و لازم نیست و در آمدنش چیه درست نیست. و در آمدن فاق بر سر جزایر مازی درست نیست مگر به تقدیر قد مگر به تقدیر قد پس باید برای درست کردن این اوارت دیگیم چی بوده فکانه رو فقد کانه یه قدم باید چی کنیم ام. تقدیر دیگیم پس اولا در قسمت شرطش کانه هست شده و خبر که چیه؟ کم از تو قابل قیاس در قسمت جزا هم مجبوریم یه قد دردی در بگیریم گیریم فاهم لازم نبوده که بیاد این خودی اومده این جز موارد غیر قیاسیه دیگه جز مواردیه که در درست همش زعفه و از کانه و چی هست شده تو قسمت جزا کانه و پس اون قسمت اول همش حسنه بود این قسمت آخر چهارم همش زف بود حالا نگاه کنیم و رفت همار قسمت دوم صورت دوم هفته رو رفت بدیم بگیم چی؟ انخیران فخیران انخیران فخیران در قسمت شنط در قسمت شعر ضعف صورت چهارم را دارد ضعف صورت بگیر چهارم را دارد داریه نده؟ بسید صورت چهارم را دیگه قسمت شعر را و در قسمت جزا و در قسمت جزا چی؟ قوت صورت اول را دارد برسته؟ و در صورت جزاش چیه فخیرون یعنی فجازه ها هم خیرون قوت صورت هفته خب این نصفش خوبه نصفش بگی درست این همون صورت گفم صورت سربون و نصبه هما و چی؟ نصبه هما نصب بدیم به هر دو دوتا بگیم چی؟ این خیر فخیر در قسمت فعل شرط قبط صورت اول داده در قسمت دلشت قبط صورت اول داده در قسمت جزایشن ضعف صورت چهارم میده اون که واقعا و اسمش هسته به روها با لازم نیسته خب باز خوب نصبش؟ بعد. حالا نگاه کنید پس صورت اول چی؟ همه خوب صورت چهارم شد همه بعد. صورت دو اقواست قبی ترین ول اخیرها از اف چهارم اخیر از اف سوائه از همه ضعیب شد شد ول متوسطه متوسطان این چی؟ دو بوم و سبب تو دو دوتایی که وسط هم دو بوم و سبب متوسطان متوسطان این چی؟ یعنی نه جلسه الحمدلله برده آلمین و سد الله اله محمد نارده اله احرف مشبهت اله احرفت احروف گفتم بهتر است از حروف گفتم چرا؟ چون احروف جمع قل و جمع قبله بین سه تا ده رو میگیره و حروف مشبهتون بده، چند تاست؟ تا و ما حروف بدیم، حروف جمع کسره، مگر اینکه که اون موقع بیانی توجیح کنیم بگیم این نه مخفف میشه هن نه مخفف میشه با مخففاتشون ممکنه که این ها میشه زیادی ولی اصل اینه که الاحروف گروف میشه چون احروف میگه گروف نیمید حال مشبه به فیل شبیه به فیلن و بچه شبه هاشو در این کتاب اوامر خوندیم همشباعت معنایی دارن به فیل همشباعت لفظی دارن که معنای شفت بختو و پفت بختو و استدرکتو و اینجور چیزها و از طرفی عمل فیل رو هم انجام میدن بر مرتدا خبر داخل میشن همهشون محطرشون مدنی بر فتحه مثل فیل مازی سه حرفی و چار حرفی و پنج حرفی هم مثل فیل و هم مبارده چیزی که اینجا بحثشون او مشبتون و یا ان نه و این حلو مشبتون به فر نه است.